کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده های شمال سالها پیش طوری که بزرگترها تعریف می‌کنند، در یه نقطه از دنیا حیولای بزرگی زندگی می‌کرد. این حیولا از شمال به اونجا اومده بود همه جا را هم ویرون میکرد و آدما ها و حیواناتو می‌خورد. خورد خیلی خطرناک بود همه نگران بودند که اگر راه چارهی پیدا نکنند دیگه هیچ موجود زنده ای روی زمین باقی نمیمونه. بدنش شبیه گاف بود و پاهایی مانند قورباغه داشت. دو پای جلویی کوتاهتر از پاهای عقبی بود. دم بلندش مثل مار بود و 20 متر طول داشت. وقتی اژدها میخواست حرکت کنه مثل قورباغه ها می پرید و با هر پرش نیم مایل جلوتر میرفت. بدبختانه ت داشت سالها در یه نقطه بمون تا همه موجودات اون اطراف رو نمیخورد از اونجا نمیرفت با هیچ چیزم نمیشد اونو شکار کرد چون تمام بدنش پوشیده از پولک بود و این پولک ها از سنگ و آهنم سختتر بودن دو چشم بزرگش مثل دوتا چراغ نورانی بود که هم و هم روزا می درخشید هر موجود بدشانسی که به چشمش نگاه میکرد تلس شد و با پای خودش به دام حیولا می این روش دیگه لازم نبود اجده برای خوردن آدمها و از جاش تکون بخوره. همه پادشه سرزمین همسایه برای کشتن حیولا ها جایزه های گرون قیمتی تقیم کرده بودن. هرکس که میتونست اونو بازور یا جادو نابود کنه برنده جایزه بود. خیلیها شانس خودشون رو امتحان کردن اما همه شکست خوردن. یه بار جنگل محل زندگی اجده آتش گرفت همه جنگل سوخت اما هیچ آسیبی به هیولا نرسید. با این وجود همه دانایان کشور عقیده داشتن که فقط یه نفر میتونه اژدها رو نابود کنه و اونم صاحب انگشتر خاتم سلطان سالومن هست. روی این انگشتر به رمز چیزی نوشته شده بود که اگه کسی میدونست از اون رمز سر در بیاره میفهمید که چطوری میتونه اژدها را نابود کنه. حتی یه نفر نمیدونست که اون انگشتر کجاست و چه چیزی همروش نوشته شده؟ سرانجام مرد جوونی که خیلی خوش قلب و شجا بود تصمیم گرفت دنبال انگشتر بگرده. او به طرف کوههایی که خورشید از پشت آنها طولو می کرد به راه افتاد چون میدونست که تمام دانستههای قدیمی از شرق اومده. بعد از چند سال او یه جادوگر شرقی معروفی رو می بینه و مشکل خودشو رو به اون درمیون میون میذاره. جادوگر جواب داد، انسان فانی دانشی کمی داره و نمیتونه به تو کمکی بکنه اما پرنده های آسمون راهنماهای خیلی خوبی هستند. البته اگه زبونشون رو بفهمی اگه تو چند روز پیش من بمونی من کمکت میکنم تا این زبون رو یاد بگیری جوان با خوشحالی پیشنهاد جادوگر رو قبول کرد و گفت من چیزی ندارم که برای تشکر به تو بدم اما مطمئنم که این مشکل حل بشه تو هم خوشحال میشی. جادوگر با نهگیه هایی که زیر نور ماه جمع کرده بود مجونی ساخت و هر روز نه قاشق از اونو به جوون میداد. بعد از سه روز مرد، توانست، زبون پرنده ها رو بفهمه. هنگام خداحافظی جادوگر بهش گفت اگه تونستی انگشتر سلطان سالومنه پیدا کنی پیش من برگرد تا نوشته ی روی اون رو هم برات توضیح بدم. چون غیر از من هیچ کس در دنیا نمیتونه این کار کارو انجام بده. از اون لحظه به بعد جوون دیگه احساس تنهایی نمیکرد. چون حرفهای پرنده ها رو میفهمید و از این را چیزهایی یاد گرفت که هرگز به فکر انسان ها هم نمی رسید. با این حال روزها گذشت و او چیزی درباره انگشتر نشینید. سرانجام یه روز قروه وقتی خسته و گرسنه زیر یکی از درختای جنگل نشسته بود و میخواست شام بخوره دو پرنده زیبا رو میبینه که روی یکی از شاقه های درخت نشستند و درباره اون حرف میزنن. پرنده اولی گفت من این احمقی که زیر درخت نشسته رو می‌شناسم. او از راه دوری اومده اما چیزی رو که میخواسته پیدا نکرده. او دنبال انگشتر سالومه میگرده. پرنده دومی جواب داد. او باید از ساهر بانو کمک بگیره. اینطوری حتما موفق میشه. اگه انگشتر پیش خودشم نباشه حتما میتونه که صاحب اونا پیدا کنه پرنده اولی گفت ولی کجا معلوم میشه که اونا میشه پیدا کرد سایر بانو جایی مشخصی که نذاره هر روز به یه طرف میره درست مثل اینکه به این مرد جوون بگیم دنبال باد بگرد دیگری جواب داد من نمیدونم اون الان دقیقا کجاست اما سه شب دیگه وقتی که ما کامل میشه حتما مثل همیشه برای شستن صورتش کنار چشمه میاد چون با این کار صورتش همیشه جوان میمونه و هیچ وقت چروخ نمیشه پرنده اولی گفت خب چشمه زیاد از اینجا دور نیست حاضری با هم بریم اونو تماشا کنی. اون یکی جواب داد البته با کمال میل جوان فوری تصمیم گرفت پرنده ها رو تعقیب کنه اما دو چیز نگرانش میکرد اول اینکه میترسید وقتی اون خوابه پرنده از اونجا پرند و دیگه اینکه چون نمیتونست پرواز کنه ممکن بود اونا گم کنه اونقدر خسته بود که نمیتونست تمام شب رو بیدار بمونه اما بهقدری زوق و شغ داشت که صبح خیلی زود بیدار شد نگاهی به بالای درخت انداخت دوستای بالدارش هنوز اونجا بودن و در خواب بودن مرد شو خورد و منتظر موند اما پرنده ها تمام روز از این شاخه به اون شاخه پریدن و دنبال غذا میگشتند شبم برای خواب هلوناشون برگشتن روز دیگه هم به همین ترتیب گذشت اما صبح روز سوم یکی از پرنده ها به یکی دیگه گفت امروز باید به طرف چشمه برویم بانو رو موقع شستن صورتش اونجا تماشا کنیم اونها تا ظهر روی درخت موندن بعد به طرف شمال پرواز کردند مرد جوان خیلی نگران بود که نکنه اونها رو گم کنه اما اونقدر اون دو پرنده رو تعقیب کرد تا روی یک درخت نشستند مرد جوان دنبال اونها میدوید و حسابی خسته شده بود تا اینکه بالاخره بعد از سه بار استراحت کوتاه فضای بازی در وسط جنگل رسیدند. پرنده ها همون دور درختی را پیدا کردند و روی بالاترین شاخش نشستند. وقتی جوان به اونجا رسید متوجه چشمه زیبایی شد که آب پاک و زلالی در آن جریان داشت او زیر درختی که پرنده ها روش نشسته بودند نشست و با دقت به حرفای اونها گوش میداد پرنده اولی گفت خورشید هنوز غروب نکرده ما باید صبر کنیم تا ماه در بیاد و بانو خودش رو به چشمه برسونه به نظر تو بانو این مرد می میبینه دیگری گفت هیچ چیز از چشمه او پنهان نمیمونه یعنی ممکنه مرد جوون کاری کنه که چشم ساحره به او نیفته پرنده اولی گفت ما باید منتظر بمونیم و ببینیم چطور با هم روبرو میشن. هوا کم کم تاریک میشد و ماه کامل تازه در اومده بود که مرد جوان صدای سوت مانندی شنید. پس از چند لحظه از میان درختان دختر جوانی بیرون اومد و خودشو به کنار چشمه رسوند. اون طوری روی چمان راه میرفت که فقط نوک انگشتاش رو زمین میخورد. جوان نمیتونست چشم ازش برداره. چون در تمام عمرش دختری به زیبایی او ندیده بود. ساهره بدون توجه به اطرافش کنار چشمه ایستاد. به ماه کامل فیره شد. سپس زانو زد و صورتش رو نه بار شست. بعد دوباره به ماه نگاه کرد و نه مرتبه دور چشمه چرخید و این آواز را تکرار کرد. ای ماه کامل همیشه نورانی بر زیبایی هم سایه می سرخی گونه هایم را سفید مگردان تا زمانی که بر زمین نور میتابانی. بانو را جوان نگهدار و شاداویش را مگیر. بعد صورتش را با موهایش خوش کرد و میخواست بره که چشمش به مرد جوان افتاد و به طرفش رفت. جوان استاد و منتظرمون. بانو گفت تو باید تنبیشی چون به خودت اجازه دادی کارهای من منو زیر نور ماه تماشا کنی. این بار تو رو میبخشم. چون قریبی و از چیزی خبر نداشتی. اما باید به من بگی که کی هستی و چطور به اینجا اومدی. که حال هیچ انسانی پاشو اینجا نذاشته. جوون با تماس گفت. بانوی زیبا منو ببخش که شما رو ناراحت کردم. من بعد از مدتی سرگردونی به اینجا رسیدم و میخواستم زیر این درخت کمی استراحت کنم. وقتی شما اومدید نمیدونستم چی کار کنم. به همین خاطر همین جا نشستم و ساکت تماشاتون کردم. ولی نمیدونستم این کار شما رو ناراحت میکنه. بانو با مهربونی گفت بیای امشب را پیش ما بمون. روی یک بالش خوابیدن بهتر است دراز کشیدن و خذاهای مرطوبه جوون کمی فکر کرد و همون موقع شنید که پرندهها میگن هر جا میگه برو، اما مواظب باش از خون خودت به اون ندی چون جون تو از دست میدی. به این ترتیب جوان همراه دختر به راه افتاد. خیلی زود اونها به باغ زیبایی رسیدند. در وسط باغ خانه باشکوهی قرار داشت که مثل طلاق زین و نور و ماه میدرخشید. وقتی جوان وارد خانه شد، اتاقهای مجللی را دید که هر کدوم از یکی دیگه زیباتر بودن. پس از چند لحظه اونها به اتاقی رسیدن که میزی بستد و اون قرار داشت و ظرف های گران قیمتی روش چیده بود. در کنار میز دو صندلی دیده میشد، یکی از نقره و یکی دیگه از طلا. بانو روی صندلی طلا نشست و صندلی نقره را به مهمانش تعارف کرد. دخترهایی با لباسهای سفید از آنها پذیرایی کردند. وقتی راه می رفتند، هیچ صدایی ایجاد نمیشد تا پایان غذا هیچ حرفی گفته نشد بعد از شام جوون و ساحره بانو با هم حرف زدند با اینکه زنی با لباس قرمز وارد شد و یادآوری کرد که وقت خواب است جوون را به اتاقی راهنمایی کردند که تختی با رویه ابریشم و بالش هایی از پر در آن قرار داشت مرد به خواب راحتی فرو رفت اما احساس می کرد صدایی در گوشش تکرار می‌کند. یادت باشه از خون خود به اون ندهی؟ صبح روز بعد بانو از او پرسید که آیا دلش میخواهد در اون قصر زیبا با او زندگی کند یا نه؟ و چون مرد فورا جواب نداد. دختر ادامه داد خودت میدونی که من همیشه جوان و زیبا میمونم. از هیچ هم دستور نمیگیرم. هر کاری هم دلم بخواد انجام میدم به همین خاطر تا به حال به فکر ازدواج نبودم. اما از لحظه ای که تو رو دیدم به تو علاقه من شده اگر موافق باشی ما با هم ازدواج می‌کنیم و مثل دو شاهزاده به زندگی ادامه میدیم. چون من ثروت فراوانی دارم. پیشنهاد بانوی زیبا جوان را بسپسه کرد اما یادش اومد که پرنده‌ها به او میگفتند ساهره و هشدار اونها دائم تو گوشش صدا می کرد. به همین خاطر با احتیاط جواب داد از من دلگیر نشی بانوی عزیز ولی من نمیتونم در مورد تصمیم به این مهمی فورا جواب بدم چند روز فرصت بدید تا یکدیگر رو بهتر بشناسیم بانو جواب داد چرا که نه چند هفته فکر کنید و نظر قلبتون رو بپرسید بعد برای اینکه حوصلهشون سر نره دختر مرد جوان را به قسمت های مختلف خونش برد و های با باشکوهش رو بهش نشون داد اما همه این دارایی با جادو ساخته شده بودند چون بانو می دونست که هر چیزی را که دلش می با کمک انگشتر خاتم سلطان سالومن بسازه. هیچ یک از اونها دائمی نبودن. خیلی زود بدون اینکه اثری از خود باقی بذارن ناپدید می شدن. اما جوون اینو نمی دونست. اون فکر می کرد که همه اونها واقعی هستند. یه روز بانو اونو به یه اتاق مخفی می بره که درون، یک جعبه کوچک طلا روی میزی از نقره قرار داشت. داخل جعبه را نشون داد و گفت این بزرگترین گنج منه و در دنیا نظیر نداره. یه انگشتر طلای گرانبها. اگه با من ازدواج کنی من اونا به عنوان هدیه عروسی به تو خواهم داد و از اون به بعد تو خوشبخت‌ترین مرد روی زمین خواهی شد. اما برای اینکه عشقمون ابدی بشه تو باید سه قطره از خون انگشت کوچک دست چپت رو به من بده. باشه نیدنه این حرف، بدن مرد جوان به لرزه افتاد چون متوجه شد که جونش در خطره. البته اون خیلی بود و تونست که احساسش رو پنهان کنه. فقط از بانو پرسید که چرا این انگشتر اینقدر ارزش داره؟ دختر جواب داد. هیچ انسانی تا به حال نتونسته به قدرت واقعی این انگشتر پی ببره چون هیچ کس از نوشته روی اون سر در نمیاره. اما من با همین اطلاعات ناقص هم استفاده های زیادی از اون می کنم. اگر من انگشتر رو توی انگشت کوچک دست چپم بندازم میتونم مثل یه پرنده به هر جا که بخوام پرواز کنم و اگر اونا به انگشت دوم دست چپم بندازم نامرعی می شم. یعنی من همه چیز رو می بینم، اما هیچ کس منو منو ببینه اگر انگشتر رو در انگشت وسطی دست چپم بندازم دیگه نه آتیش و نه آب و نه هیچ سلاح ای به من صدمه اگر اونو در انگشت نشانه دست چپم بندازم میتونم هر چیزی رو که آرزو دارم درست کنم. میتونم در یه لحظه خونه یا هر چیزی دیگه ای بسازم. بالاخره اگر انگشت رو به انگشت شست دست چپم بندازم اون دستم به قدر قوی میشه که میتونه سنگ و دیوار رو خورد کنه. به اضافه همه اینها انگشتر یک نوشته رمزی داره که همونطوری که گفتم هیچکس ازش سر در نمیاره. بدون شک این راز خیلی مهمه میگن این انگشتر متعلق به سلطان سالومن بوده کسی که در دوران سلطنتش داناترین مردم زندگی میکرده اما کسی مطمئن نیست که انگشتر را به یک انسان ساخته باشه بعضی ها میگویند که یک فرشت اون رو به سلطان دانا داده است وقتی جوون این حرف رو شنید تصمیم گرفت و هر قیمتی که شده انگشتر را به دست بیاره البته نمیتونست قدرتهای عجیب اون رو باور کنه دلش میخواست بانو اجازه بده و انگشتر رو در انگشتش بندازه اما آرزوشو به زبون نیاره کمی بعد دختر اون رو توی جعبه گذاشت چند روز بعد اونها دوباره درباره انگشتر جادویی حرف می‌زدند که جوون گفت من نمیتونم همه حرفهای شما رو در مورد قدرت انگشتر که گفتید باور کنم بانو سراغ انگشتر رفت و اون رو در حالی که مثل خورشید میدرخشید از جبه بیرون آورد و آن رو در انگشت وسط دست چپش انداخت و به جوان گفت یه چاقو بردار و سعی کن که اونو زخمی کنی تا مطمئن بشی که هیچ صدمه ای نمیتونه بهش زده بشه جوان قبول نمیکرد اما بانو اصرار کرد مرد چاقو به دست گرفت و اول خیلی آروم و بعد کاملا جدی سعی کرد که اونو به بدن بانو فرو کنه اما به نظر می رسید که دیواری آهنی میانه او و دختر قرار داره بانو بدون اینکه صدمهای ببینه جلو او ایستاده بود و می خندید. بعد دختر انگشتر را در انگشت دوم دست چپش انداختو نامرعی شد او دیده نمیشد اما صدای خندش به گوش میرسید جوون گفت اجازه میدهید منم اونو امتحان کنم بانو بدون اینکه به چیزی شک کنه انگشتر را بهش داد و جوان اینطور نشون داد که نمیدونه باید چی کار کنه و پرسید باید انگشته رو در کدام انگشتش بکنه تا های بارنده به او صدمه نزنند بانو با خنده جواب داد انگشته وسدی دست چپ دختر سعی کرد با چاقو جوون را زخمی کنه حتی خود مرد هم میخواست دستش را بباره ولی غیر ممکن بود بعد از بانو خواست که بهش بگه چطور با کمک انگشته میشه سنگ را خورد کنه دختر او رو به حیاط برد سنگ بزرگ نشونش داد و گفت حالا انگشتر را در انگشت شست دست چوت بنداز و خودت میفهمی که دستت چه قهز قوی شده. جوون اطاعت کرد و در حالی که کاملا شگفت زده شده بود تونست با یه مشت سنگ را هزار تکه کنه. جوون با خودش فکر کرد که دیگه چنین فرصتی گیرش نمیاد اگر از اون استفاده نکنه واقعا یه مغه. به همین خاطر همونطور که کنار سنگریزه های ایستاده بود و انگشتر را در انگشت دوم دست چپش انداخت. بانو گفت: حالا تا وقتی که اون را از انگشت در نیاری من نمیتونم تو را ببینم. اما جوون چنین تصمیمی نداشت. در عوض راه افتاد و از اونجا دور شد. بعد انگشتر را در انگشت کوچکی دست چپش انداخت و مثل یه پرنده به پرواز در اومد. وقتی بانو اون را در حال پرواز دید فکر کرد جوون هنوز مشغول امتحان کردنه. فریاد زد: برگرد دوست من" حالا دیگه فهمیدی که من راست میگم ولی اما ولی اما مرد جوان هرگز برنگشت بانو با تازه فهمید فریب خورده و افسوس خورد که کاش به جوون اطمینان نمیکرد جوان آنقدر نمی به پروازش ادامه داد تا به ی جادوگر دانایی رسید که زبان پرندگان رو به یاد داده بود وقتی جادوگر را دید تلاشهای جوان به نتیجه رسید خیلی خوشحال شد و فوری دست کار شد تا نوشته جادویی روی انگشتر را رو بخونه اما این کار هفت هفته طول کشید بعد او برای جوان توضیح داد که چطور اجزای شما را نابود کنه او گفت تو باید یک اسب آهنی بسازی که زیر پاهاش چرخهای کوچکی باشه تو باید یک نیزه بلند هم داشته باشی و با انداختن انگشتر جادویی در شست چپت بتونی از اون استفاده کنی این نیزه باید به اندازی تنه درخت باشه و هر دو سرش هم تیز شده باشه به وسط نیزه باید دو زنجیر خیلی بلند وصل کنی وقتی اجده به طرف تو اومد باید نیزه را در دهانش فرو کنی بعد خیلی سریع از اسب آهنی پایین بپری و زنجیرها را به دو تیر آهنی ببندی طوری که اجده نتونه تکون بخوره بعد از دو سه روز حیولا کاملا خسته میشه و ضعیف میشه و تو میتونی به اون نزدیک بشی بعد باید با کمک انگشتار سلطان سالومن که آن را در شست چپت ای ضربه نهایی را به او بزنی اما قبل از نزدیک شدن به او باید انگشتر را در انگشت دوم دو دست چپت بندازی تا اژدهها تو رو نبینه چون ممکنه با دومش تو رو بکشه ولی حواستو تو جمع کن که بعد از تمام شدن این ماجرا انگشتر را گم نکنی یا کسی اون را از تو ندازه جوان از جادوگر به خاطر راهنماییش تشکر کرد و قول داد بعد از نابودی اجده ها به او پاداشی بدهند. اما جادوگر گفت چیزهایی که من از این انگشتری یاد گرفتم اونقدر ارزشمنده که دیگه هیچ پاداشی اتیاج ندارم. اونها با هم خداوزی کردند و جوان تا خونش پرواز کرد. بعد از چند هفته استراحت از مردم شنید که اجده های شمالی به طرف آنها میآید و پس از مدت کوتاهی به کشور آنها خواهد رسید پادشاه اعلام کرد که دخترش و قسمتی از سرزمینهاش و به کسی میده که کشور را از دست هیولا نجات بده جوون نزد پادشاه رفت و گفت میتونه اژدهها را شکست بده ولی به شرطی که هرچه میخواد براش فراهم کنند پادشاه قبول کرد خیلی زود به درخواست جوون اسب آهنی نیزه بزرگ و زنجیرها ساخته شدند وقتی همه چیز آماده شد تازه متوجه شدن که اسب آهنی اونقدر سنگینه که صد مرد هم نمیتونه اون رو از جاش تکون بده بنابراین جوون جوان به این نتیجه رسید که فقط خودش با کمک انگشتر جادویی میتونه این کار رو انجام بده اجده ها خیلی نزدیک شده بود و با دو پرش دیگه به این طرف مرز میرسید جوان داشت فکر میکرد که باید چیکار کنه چون اگر قرار بود خودش اسب رو حل بده دیگه نمیتونست اونطوری که جادوگر گفته سوارش بشه اما ناگهان یک کلاق پیشنهاد خوبی داد سوار اسب رو نیزه رو به زمین فشار بده مثل وقتی که تو قایق نشسته یا میخوای با فشار پارو قایق و وارد آب کنه جوون قبول کرد و متوجه شد و از این را خیلی راحت میتونه اسب جلو ببره اژدها دهان بزرگش و باز کرده بود و منتظر تومه بود اگه چند قدم جلوتر میومد میتونست جوون و اسبش و ببله جوون از ترس میلرزید و بدنش یخ کرده بود اما اعتماد به نفس خودشو از دست نداد نیزه آهنی را بلند کرد با تمام قدرت آن را در آروارهٔ پایینی هیولا فرو برد سپس قبل از اینکه اژدهها دهانش رو ببنده از اسب پایین پرید ناگهان صدای وحشتناکی در جنگل پیچید که نشون میداد اژدهها دهانش و رو بسته وقتی جوان رویش رو برگردون دید نک نیزه از فک بالایی اژدهها بیرون زده معلوم بود که نوک دیگهش هم محکم در زمین فرو رفته اما اژدهها هنوز داشت سعی می کرد با دندونهاش اسب آهنی رو گاز بگیره البته فایده ای نداشت در این لحظه جوون با عجله دست کار شد و زنجیرها را به تیرک هایی که آماده کرده بود بست بیفایده بیفایدهٔ هیولا سه روز و سه شب طول کشید در این مدت او دمش رو با چنان شدتی به زمین می‌کوبید که تا فاصله های بسیار دور زمین به لرزه در می اومد. بالاخره وقتی نیروی اژدهها به پایان رسید و دیگه قدرت تکان دادن دومش رو نداشت جوون با کمک انگشتر سنگ بزرگی را که بیست مرد هم نمیتونست اونرا جابجا کنه برداشت و با اون چنان ضربهای به سر اجدها زد که حیوان همون لحظه بی حرکت موند و بدن بیجانش روی زمین افتاد حتما خودتون میدونید تصور کنید که وقتی این خبر پخش شد همه مردم چقدر خوشحال شدن. به خاطر پیروزی جوان تمام شهر با چنان شکوه و عظمت تزین شد که این کار او قوی ترین و شجاترین پادشاهی دنیاست دیگه لازم نبود پادشاه پیر برای ازدواج با نابود کننده اژه به دخترش اصرار کنه چون متوجه شد دختر جوان آرزوی همسر قهرمانی را داره که یک تنه کاری لشکر را انجام داده بود چند روز بعد جشن نروسی با شکوی تدارک دیده شد این جشن پایکوبی چهار هفته طول کشید و همه پادشاهان کشورهای همسایه در آن شرکت کردند تا از جوان به خاطر نجات دادن تمام آن سرزمین ها از دست یک دشمن مشترک قدردانی کنند اما آن جشن و شادمانی طولانی باعث شد همه فراموش کنند که باید بدن های مرده را از بین ببرند چون لاشه بوی خیلی بدی گرفته بود طوری که هیچ کس نمیتونست اون را تحمل کنه و کمی بعد هوا کاملا مسموم شده بود و مردم بیمار شدند و صدها نفر جان خود را از دست دادند در چنین موقعیتی بود که داماد پادشاه تصمیم گرفت یک بار دیگر از جادوگر شرقی کمک به خود فوری انگشتر را به دست کرد و در جنگل به پرواز در اما ضرب مسئله معروفی هست که میگوید مال دزدی وقت اقبت خوشی به همراه نداره انگشتر دزدی هم بالاخره باعث دردسر شاهزاده شد ساهر بانو بعد از اون ماجرا شب و روز نداشت تا اینکه فهمید انگشتر کجاست او به محض اینکه با کمک سهر و جادو خبردار شد که شاهزاده به شکل یک پرنده به دیدن جادوگر شرقی میره خود را به شکل اقاب درآورد و اونقدر منتظر موند تا ای که منتظرش بود از راه رسید او شاهزاده را از انگشتری که با یک روبان به گردنش بسته شده بود شناخت اقاب خیلی سری به پرنده حمله کرد او را با چنگالهایش گرفت و قبل از اینکه مرد مرد پرنده شکل بتواند مقاومتی بکنه انگشتر را از گردنش کشید بعد اقاب با شکارش به زمین نشست و هر دو نفر به شکل آدمی زاد با هم روبرو شدند صاهر بانو فریاد زد ای شرور بدزاد حالا تو در چنگ من هستی من از روی عشق و علاقه به تو محبت کردم و تو جواب منو و با فریب و دزدی دادی تو ترین جواهرم را از من دزدیدی من انتظار داشتی از این بعد به, به عنوان داماد پادشاه خوش و زندگی کنی حالا ورق برگشته تو در چنگ منی و من میخواهم از تو انتقام بگیرم شاهزاده بالتماس التماس گفت مرا ببخش مرا ببخش من میدونم که رفتارم با شما اشتباه بود و واقعا معذرت میخوام. بانو با جواب داد برای التماس عذرخواهی خیلی دیر شده و اگه تو را ببخشم همه به چشمه یک احمق به من نگاه میکنند. تو کار خیلی زشتی کردی. اول به عشق من توهین کردی. بعد انگشترم را دزدیدی. حالا باید مجازات بشی. بعد از این حرف او انگشتر را در شرست چفش کرد و مرد جوان را با یک دست بلند کرد و در حالی که او را با بازویش نگه داشته بود به راه افتاد. این بار او مرد را به یک قصر باشکوه نبرد و او را وارد یک قار سنگی کرد که از دیوارهایش چند زنجیر آویزان بود. بانو دست و پای مرد را با زنجیر بست تا فرار نکنه. بعد با عصبانیت گفت اونقدر اینجا بمون تا بپوسید. من هر روز برات مقداری غذا میارم تا از گرسنگی نمیری ولی اصلا امیدی به آزادی نداشته باش و بعد از گفتن این کلمات از اونجا رفت پادشاه پیر و دخترش هفته ها منتظر بازگشت شاهزاده بودند اما هیچ خبری از او نشد دختر پادشاه اغلب خواب میدید شوهرش در رنج و عذابه بنابراین به پدرش التماس میکرد که ی جادوگران و غیبگوها را احضار کند تا شاید اونا بفهمند شاهزاده کجاست و چطور میتونه نجاتش بده اما جادوگرها با همه قدرتشان چیزی نفهمیدند فقط فهمیدند او زندست و رنج زیادی میکشه ولی هیچ کدوم نتونستند جای اونو پیدا کنند بالاخره یک جادوگر مشهور فنلاندی نزد پادشاه اومد و گفت دامادش در مشرق زندانیه اما کسی که اونا اسیر کرد آدمیزاد نیست بلکه یک موجود قدرتمند و افسانهایه پادشاه ادهی را به شرق فرستاد تا دنبال دامادش بگردند خوشبختانه آنها همان جادوگر دانا را که نوشته روی انگشتر را خوانده بود پیدا کردند جادوگر خیلی زود همه چیز را فهمید او به نقطه‌ای که شاهزاده زندانی بود اشاره کرد و گفت او یک زندانی تلسپ شده است و بدون کمک من آزاد نمیشه پس من هم با شما خواهم آمد. آنها به راه افتادند. بعد از چند روز به کمک پرنده ها به غاری رسیدند که شاهزاده بیچاره هفت سال بود اونجا گیر افتاده بود. او فوری جادوگر را شناخت اما جادوگر اونو را نشناخت چون خیلی لاغر شده بود. به هر حال جادوگر زنجیرها را باز کرد و اونقدر از شاهزاده پرستاری کرد تا نیروی رو به دست آورد و آماده سفر شد. وقتی مرد به خانه رسید متوجه شد پادشاه هم روز صبح مرده و اکنون او وارث تاج و تخته. سرانجام پس از رنج و درد طولانی خوشبختی به سراغ مرد جوان اومد و این خوشبختی تا آخر عمرش ادامه پیدا کرد. از آن به بعد دیگر نه او و هیچ انسان دیگری چشمش به انگشتر جادویی نیفتاد. راستی اگر شما جای شازاده بودید ترجیح نمی دادید در کنار آن ساهر بانو زندگی کنید